دیوونه کیه؟ آقل کیه؟ جونبر کامل کیه؟ باسته نیار یار به عزتت خمارم او زلیه هیچ ندارم قف نمیگم، سوال دارم، یه تریلی محال دارم تازه داره حالیم میشه چیکارم میچرخم و میچرخونم سیارم تازه دیدم حرف حسابت منم طلای نابت منم تازه دیدم که دل دارم بستمش راه دیدم نرفته بود رفتمش جوانه نشکفت را رستمش ویروس که بود حالش نبود هستمش جواب زنده بودنم مرگ نبود جونش شما بود مردن من مردن یک برگ نبود تو رو به خدا بود اون همه افسانه و افسون ولش این دل پرخون ولش دل آره گم کردن گدار مارون ولش تماشای پرنده ها بالای کارون ولش خیابون ها صبح زدن ها شپ شپ پارون ولش دیگمونه کیه آخل کیه جونور کامل کیه گفتی بیا زندگی خیلی زیبا دو بیدم چشم رستادی بنام تا ببینم که دیدم پرسیدم این آتش بازی تو آسمون معناش چیه کنار این جوب روون نعناش چیه این همه راز این همه رمز این همه سر و اسرال مؤماست آوردی حیرونم کنی که چی بشه نوالله ما تو پریشونم کنی که چی بشه نبلا پریشونه نبودم من حیرونت نبودم تازه داشت میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتون تو دنیای خودش حریف سخت تا رستمه. گفتی به من چشما تو وقت رفتنه انجین بخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه از اداشت میفهمیدم که فهمان من چقدر کمه اتم تو دنیا خودش حریفه ستا رستم گفتی ببین ما تو وقت رفتن انجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسورش چشمای من آهن زنجیر شدن حلقه ای از حلقه زنجیر شدن اما زنجیر با زنجیر تو به نازم چشم من و انجیرتو بناده میوونه کیه؟ آخل کیه؟ جونوور کامل کیه؟ کیه؟, کیه؟